باد اسلام و عمر خدرت قرآن و خدا دیده به خود رو من خشم عمر تی قلب جان همه اهل عمر گشته به قربان عمر زنده به اشک عمری عاشقان فان عمر خیز و به اسم عمری کاری به یک بار کنیم این غم و درد همه را از دل و جم چاری کنیم الله شمشیر عمر چاره درد من و تو ریشه باطل بزنیم با کمک حق من و تو خیز و به رسم کاری به یک بار کنیم این غم و درد همه را از دل و جان چاری کنیم الله و شمشیر امر چاره درد من و تو ریشه باطل بزنیم با کمک حق من و تو تیغ عمر بشکندین سلسله ظلم و ستم لرزه زند نام عمر هایی هر کاخستم آیی ای اینا فتح ناشده نقشه دل ما عشق عمر جان تا ابد، حق شده روی دل ما روز فلسطین و گشته گشت سیه مثل شبی نام عمر جان بزند بر تن کفار طبی در دل کفار لین نقشه قتل است و جفا نقشه کشتار مسلمان و همه اهل خدا نام عمر زینت هر خانه و کاشان شده ملکه دل از اشق علی لانب و گل شده زرب بزده تیگ عمر پشت دلیران ستم واد فنا همه اصل و رگ و ریشای غم دشمن قربیچه کند همه احساس خطر قیز و به تکبیر و تکا تو بکنین سین سپر عمر بیش کندین، سلسله ظلم و ستم لرز زند نام عمر پایه ایر کاخ ستم کاخ میرسدان لحظه که بیان شود عرش خدا جنبد و این سلسله افسان شهر شود حیبت اسلام و عمر قدرت قرآن و خدا دیب به و یمن خشم عمر تی و با جان همه اهل عمر گشته به قربانی عمر، زنده به عشق عمریم عوشق او عرفان عمر، فیز و به رسم عمری کاری به یک بار کنیم، این غم و درد همه را از دل و جمچار کنیم، الله و شمشیر عمر چاره درد و تو باتل باطل بزنیم با کمک ای هر من تو آیه ای اینا فتخ ناشده نقش دل ما اشک امر جان تا ابد حق شده روی دل ما روز فلسطین و ارا گشت سیه مثل شبی نام عمر جان بزنه برطن کفار طبی در دل کفار لی نقشه قتل تو و جفا نقشه کشتار مسلمان و همه اهل خدا ضرب بده عمر، امر پشت ایران ستم باد فنا داده همه اصل و رگ و غم باد فنا داده همه اصل و رگ و غم دشمن غربی چه کند با همه احساس خطر خیزو بته کویر و تا که پو میکنیم سینه سپرد خیزو بته کویر و تا که پو میکنیم سینه سپرد